کو کو آپارتمان زندگی هشت طبقه است از که به تشفل زیست و سقف‌هایش تیرچه بگید مثل دی و زمین سر آپارتمان زندگی را چون روی زمین شیبدار ساختند از روبرو رو که نگاه میکنی پنج طبقه است از طرف دیگر که نگاه میکنی هشت طبقه سه طبقه اش از یک طرف مثل چاه توی زمین فرو فرورد اما از طرف دیگر به خیابان پشتی مشرف است. مستجر پایین ترین طبقه هر روز اصر بین ساعت شش و هفت از در ورودی آپارتمان زندگی وارد می شود. وقتی دارد راه پله های مارپیچ را می پیچد و به طرف عمق زمین می رود احساس می کند شبیه پیچ خود رو شده. از در که وارد می شود سرش به جلو خم می شود. یک طبقه که پایین می رود شانه هایش آویزان می شود. در دومین طبقه کمرش خم می شود وقتی در طبقه خودش از در ورودی داخل می شود کمرش دلا شده واقعا اینطور نیست اما او وقتی وارد آپارتمان زندگی می شود حس می کند سنگینی همه طبقات بر دوشش سنگینی می کند. چند بار نیم شب حراسان از خواب پریده و داد زده دارم له میشم توی رخت خوابش که میرود سنگینی هشت طبقه انگار یک دفعه روی او هوار می شود. زنش گفت، سابخونه؟ این حرف را هر شب می زنند. مرد به طرف پنجری نگاه کرد که از کف پیاده را شروع می شند. گفت، فردا. زن گفت، گفته حکم تخلیه می گیرم. اساسمونو میریزه تو خیابون. مرد بدنش را توری حرکت داد. انگار بخواهد از زیر تیرچه بتونی که رویش افتاده خلاص شود. زنش گفت دختر مدرسه نمیره. مرد حرفی نزد دختر جوون مکه با کفش پاره میره مدرسه. نه که نمیره. سر سفره نشستند. یه امروز چوب خطمونو فرستاده بود. می گفت اگه حسابتونو تصویه نکنین از نسیه دیگه خبری نیست. زنش توی رخت خواب گفت. مانتوم، هشت سال این مانتو رو میکشم به تنم دیگه خجالت میکشم منو با این مانتو ببینن مرد نیمه شب فریاد زنان از رخت خواب بیرون برید دارم له میشم زنش پرسید چت شده؟ هیچی چیزیم نشده صدای زنگ در بیدارش کرد صدای آدمی را که جلوی در با زنش حرف میزد میشنید دیروز بیست و پنش گیروه خریدین زنش گفت بله پولشو فردا میدیم وقتی داشت از خانه بیرون می آمد زنش گفت ورقه اختار اومده برقو قطع میکنن راهش را کچ کرد تو از جلوی دکان میوه فروشی رد نشود از جلوی مغازه قصابی که رد میشد توی درش دعا کرد خدا کنه توی مغازه مشتری باشه و منو نبینه به اداره که رسید گفتند مدیر کارت داره مدیر فریاد زد این چه وزه کار کردنه؟ اونو از ما فرست اساسیه ثابت میخوان اون وقت شما برداشت لیست لوازم تحریر مورد نیاز و فرستاین ببخشید این چند دومین باره؟ چند وقت پیش هم ورققای رو که باید میرفت به شبه ها فرستاده بودیم وزارت خونه. پاشت میزش که نشست؟ یکی از ارباب رجوع گفت از دستتون شکایت میکنم هی hey, امروز برو فردا بیا امروز برو فردا بیا اینم شد کار؟ مگه ما مالیات نمیدیم؟ زنی گفت؟ به خدا زشته با این سن و سالم ببین چند وقت و میرم که چیه که جناب باید یه شماره بهم به بدین یکی دیگر گفت بله کار هر کسی رو که درشون بخواد تو یه دقیقه را میندازن پرونده زیر بغل برای پیدا کردن شماره ی ورقه از اتاق بیرون رفت آفتاب از در بزرگ که دلنگش باز بود به سالن مرمری میتابید سالن غرق نور بود و سقف رنگ روغنی سفیدش برق میزد. مرد با دو ساعت بند سیاه به دست و پرونده زیر بغل به طرف در را به راه افتاد. به زمستان نگاه کرد. چند بار پلگ زد. از پله های مرمری پایین آمد. مثل خوابگردها ها بیان که دست خودش باشد به طرف کوچه رفت. توی کوچه راه رفت. راه رفت. زنش، بقال، مدیر، قصاب، دخترش، ارباب رجویی که جلو میزش منتظرش بودند صاحب خانه، میوه فروش، هیزم فروش سورت از پیش چشمش میگذاشتند زیر لب گفت همشون حق دارند، همشون با ساید بند ساتن به هر دو دست و پرونده کلافت زیر بغل راه رفت مدیر هم حق داره زنم هم حق داره بقال هم راه رفت. به ویترین ها نگاه کرد بی که ببیند از یک کوچه سربالایی بالا رفت. جلوی مغازه شلوغ بود. چند نفر توی مغازه آرنج را روی جایی پیشخان مانند گذاشته بودند و با تفنگ به هدف عجیب و غریب و رنگ و شلیک می کردند. گلوله نکتیز و پشت پردار وقتی به هدف می خورد، هدف که به قوطی حلبی رنگ شده می رقص کنان از جایش حرکت میکرد و صدای سوت یا زنگ شنیده میشد. در قسمت بیرونی مغازه یک دستگاه سنجش نیرو گذاشته بودند. یک کیسه بکس جوانهایی که دور دستگاه جمع شده بودند به کیسه بکس مشت میزدند. وقتی کیسه بکس به میله پشتیش می میخورد اغرب ای رو به بالا حرکت میکرد و مقدار نیروی ضربه زننده را نشان میداد. هرکس می توانست عغربه را تا 6 درجه بالا ببرد یک پاکت سیگار جایزه جوانی درشت هیکل نیرویش را جمع کرد و جم کردید. مشت محکم به کیسه بوکس زد اقربه تا پنجاه هشت درجه بالا رفت. بعد پایین آمد. دومین دو مشت اقربه را تا پنجه و دو بالا برد. به کیسه بوکس نگاه می کرد. چشم از کیسه بوکس بر نمی داشت. کیسه بوکس یواش یواش شبیه صورت مدیر شد. های برجسته، صورتی گرد و قلومبه. صورت خود مدیر گفت تو حق داری آقای مدیر تو حق داری اما منم حق دارم پرونده زیر بغلش را روی پیشخوان گذاشت ساید بند دست راستش را درآورد. دستش را مشت کرد نیرویش را جمع کرد و مشت محکمی توی صورت مدیر خواباند اقربه به شست رسید جوان ها به مرد لاغرویی نگاه کردند که بالای پنجاه سال داشت صاحب مغازه یک پاکت سیگار به طرفش کرد. بفرمایید چشم هایش به کیسه بوکس بود کیسه بوکس با صورت پف کرده و گوشت قذاب مونه می زند. تو حق داری اما منم ناحق نیستم مشتی دیگر توی کیسه بوکس خواباند اقربه به شست رسید بفرمایید سیگارتون عین صورت زنمه مثل صورتون آویزونه تو حق داری زن عزیزم اما منم شش پاکت سیگار برد آرنجش را روی پیشخان گذاشت از دخترک پشت پیشخان یک تفنگ گرفت قنداق تفنگ را به شانش تکیه داد از میان هدفهای رنگ و وارنگ یکی را انتخاب کرد که به زن عرباب رجومی مانست شما همون خانومی هستید که شماره ورقه میخواست مگه نه؟ خیلی رفتین و اومدین خسته شدین امروز برو فردا بیا حق دارین اما منم ماشه را فشار داد. درست خورد وسط هدف. زن ارباب روجود دلش را گرفت و از کمر تا شد. گفت، تموم شد، مرد. دختره که مسئول غرفه تیراندازی گلوله پرداره دیگر در لوله تفنگ گذاشته. این هیزم فروش، همون هیزم فروشی که پولشو میخواد. حق داره. ماشه را فشار داد. وقتی گلوله به هدف خورد، صدای ترومپ شنیده شد. مرد و خلاص شد. اونم، منم، دخترک گلوله دیگری در لوله تفنگ گذاشت، گلوله پردار درست و وسط پیشانی صاحب خانه نشست، صدای زنگ بلند شد زینگ، زینگ، آقا بقال تو هم به خدا حق داری، چی، من؟ ماشه را فشار داد، پرنده از دریچه کوچک بالای جعبه چوبی ساعت سرش را بیرون آوی. مرد خندید، سالها بود این طور از ته دل نخندیده بود ساید بندهای ساتن سیاهش را توی جیبش گذاشت پرونده را زیر بغلش گرفت همراه راه میرفت. هم می خندید آسوده بود، توی سرش انگار خالی شده بود نه زنش، نه بچه نه صاحب خانه، نه بقال، نه ارباب رجوع، نه مدیر مرد می خندید به این مرد خوشحال بود. با حالتی تمس